سلام بر همه شما مخاطبان کانال هزار افسان جایی که قصه ها و افسانه های کهن جان دوباره می گیرند امروز داستان چند قسمتی ملک جمشید رو به یاری حق شروع می کنید. داستانی بسیار جذاب و شیرین از افسانه های ایران زمین پس تا انتهای داستان با ما باشید و لذت ببرید روزی بود و روزگاری در ولایت زیر باد هندوستان پادشاهی بود به نام ملک همایون شا. اون پسری داشت به نام ملک جمشید، پسر خیلی شجاع، زیبا و دلیر. ملک جمشید قصه ما روزی با ادهی از سواران و همراهاش به بست شکار به شکارگاه رفته بودند در اونجا چشمش به یه آقوی زیبای کچیک افتاد و تصمیم گرفت که اون رو خودش به تنهایی شکار کنه. آهسته به سمتش رکت و سر رو حلقه کرد و به سمت آهو پرتاب کرد اما آهو زیرک بود و تونست خودش رو از تنابه که به دست و پاش پیچیده شده بود با یه حرکت آزاد و فرار کنه این کار آهو باعث شد که به شاهزاد حسابی بر بخوره پس به همراهاش گفت هیچکی اجازه نداره دنبال من بیاد من میخوام که به تنهایی برم و این آهو رو شکار کنم و برگردم با اسبش چهار ننگند به دنبال آهو رفت. روز به نیمه رسیده بود و آفتاب حسبی گرم کرده بود همه جا رو، شاهزاده و اسبش خیلی عرق شده بودن. ولی دستبردار نبود که نبود و همانطور دنبال آهو میرفت. آهو هم از هر طرف فرار می کرد. یه وقت شاهزاده متوجه شد که غروب آفتاب شده و به جنگلی رسیده. و با خودش گفت اگه این آهو داخل جنگل بره که دیگه اصلا نمیتونم پیداش کنم و باید دست خالی برگردم. بنابراین تیر و کمانش رو در آورد و آهو رو نشانه گرفت و تیر رو رها کرد. تیر دو روز به پهلوی آهو خورد و از اون طرف بدنش خارج شد. آهوی بیچاره به هوا بلند شد و به زمین افتاد و مرد. شاخزاده از اسبش پیاده شد و به سمت اون رک و سرش رو برید. و وقتی که کارش تموم شد تازه فهمید که دیگه هوا خیلی تاریک شده و اصلنم نمیدونه که از کدوم طرف باید بره. با خودش گفت: بهتر امشب همینجا بمونم و فردا صبح همراهانم حتما میان دنبالم و بعد با اونها برمیگردم. در همون نزدیکی ها هم چشمه آبی بود و رفت کنار اونو دست و شست و بدره هم هیزم جمع کرد و آتیشی روشن کرد و کمی هم از گوشت آهور کباب کرد و خور. اسبش را هم به درختی بست و مقداری علف هم جلوش ریخ و خودش هم در کنار آتش خوابی. و اما نیمه بهرام دوست با چل نفر از یارانش برای دستبرد زدن به کاروانها از میان جنگل خارج شد. ایستاد و به یارانش گفت برید و یه بررسی کنید و اگه کاروانی پیدا کردین به من خبر بدی. یارانش هم در حین بازرسی چشمشون به اسب گیرانبه و تجهیزات گیران قیمت افتاد و فورا به بهران خبر دادن. اونم آهسته آهسته در تاریکی شب اومد تا رسید به کنار چشمه و دید که به به یه جوون با لباسای گیران قیمت؟ خنجر جواهر نشان، شبشیر گوهر نگار، کنار چشمه آب در خواب حمیقیه. متوجه شد که اگه این جوان بیدار بشه بود، دستش به قبضه شمشیرش بخوره حریف هزار مرد جنگی خواهد بود. این بود که به یارانش گفت دور این جوان خواب رو بگیرید و یه دفعه به سرش بریزید و دستاشو ببندید که اگه بیدار بشه همه ما رو می‌کشه. یارانش هم چنین کردند و شاهزاده چه خاص به خودش به جامبه اون رو به بند کشیدن. به طور که حتی بادر نبود کوچکترین حرکتی بکنه و بعدم دید که چه نفر دورش رو گرفتن. آه از نهادش بر اومد ولی دیگه چاره نبود. بهرام دوست هم فرمان داد که همه لباسهاش رو از تنش در بیارن و هرچی هم که قیمتی داره بردارن. اسبش هم بردارن. بعد هم گفت همه بریم و فقط یه نفر اینجا بمونه. اون جوان رو سربه نیست بکنه و بعدم دنبال ما بیاد چون که دیگه مرد صدایی نداره تا اینکه جایی از این ماجرا چیزی بگه. بعد هم با یارانش زد به میون جنگل و پی کار خودش رو. یه نفرم اونجا موند و خنجر رو از غلاف کشید که شاهزاده رو از بین ببره. بی اختیار اشک از چشای شاهزاده سرازیر شد و گفت ای جوون بی‌انصب شماها که همه اسباب و اموال منو بردین دیگه از جون هم چی میخواین؟ دوز گفت ای جوون آدم مرده صدا نداره اگه تو رو از بین نبریم میری همه جا ماجرا رو تعریف میکنی و فتنه درست میکنی همه ی ما رو بکشتن میدی در حالی که اگه تو یه نفر رو بکشیم ما سوده میشین و این به نفع گفت ای جوون خدا رو گواه میگیرم که از شماها و کار شما به هیچ احد و ناسی چیزی نگم و بعدم اونقدر اصرار کرد و قسم خورد تا اون دوست هم از خون اون گذشت و پی کارش رفت. بعد از اون ملک جمشید خدا رو شد کرد و از جاش بلند شد و برای حفظ جونش سر به بیابون گذشت و فقط میدوید تا اینکه دیگه آفتاب طولو کرد و تا اندازه ای خاطرش جمع شد که دیگه بهش کاری ندارم کنار آبی رسیده بود و همونجا نشست و یه آب به صورتش زد و یه نفس امی هم کشید و بعد کم کم افکار زیادی به ذهنش اومد و با خودش گفت این ملک جمشید خوب خودت رو انگشت نمایی همه کردی حالا میخوای چیکار کنی؟ و همینطور فکر کرد که ای درن قافل اگه بخواد به شهر برگرده پدر و یاران و دوستانشو همه ی سرزنشش میکنن که ای ملک جمشید با اون همه ادعای مردانگی و شجاعت این چه حالیه که داری؟ همینطور با خودش گفت تا زنده باشم مورد ملامت و سرزنش همه قرار می گیرن. پس بهتره که اصلا سر به بیابون بذارم و تا جون در بدن دارم برم که گفتن اگه صد سال زیر سنگ باشی از اون بهتره که زیر ننگ باشی اگه تو بیابون از گرسنگی و تشنگی هم بمیرم باز بهتری که در شهر همه من و سرزنشون ملامت کنم. بنابراین این خودش رو جزم کرد و از جاش بلند شد و رو به آسمان کرد و گفت خدایا تو خودت میدونی که تا دیشب من صاحب جاه و مقام و ثروت و همه چی بودم ولی حالا به نون شبم هم محتاجم. روی رفتن به وطنم هم دیگه ندارم پس به امید تو و رحمت تو میرم تا باز صاحب جلال و شکوه و ثروت بشم و تا اون زمان هم به وطن خودم بر نمیگردم از اون طرف بشنوید چند کلمه از همراهان شاهزاده اونا تا غروب آفتاب منتظر شدند و دیدن ملک جمشید نیومد. با خودشون گفتن حتما شاهزاده شکار کرده و چون دیر شده در میان ایلی یا قریه ای مونده بهتری که در همین مکان بمونیم و فردا صبح دنبالش بریم و پیداش کنیم این بود که شب رو خوابیدند و صبح الضحوّه هر کدوم به دنبال پیدا کردن شاهزاده از یه طرف رفتند ولی خبری از شاهزاده نبود که نبود تا شب گشتن رو ادامه دادن و چون پیداش نکردن باز با خودشون گفتن که حتما شاهزاده شکار کرده و بعد هم به شهر برگشته. بنابراین اون شب رو هم در شکارگاه خوابیدن صبح روز بعد همگیشون گیشون شهر شدند شدن اما اونجا هم فهمیدن که شاهزاده به شهر هم بر نگشته پیش پادشاه رفتند و داستان رو تعریف کردند که شاهزاده سه روزه که به دنبال آهور رفته و بر نگشته پادشاه هم حسابی نگران شد و از جای خودش بلند شد و با ادهی از سواران و همراهانش به دنبال شاهزاده راهی شکارگاه و بیابان شدند. سه شبان روز همچنان به دنبال اونی میگشتن اما پیداش نکردن که نکردن این بود که به شهر برگشتند و لباس عذاب تن کردند و به عذاداری مشغول شدند چون که فکر میکردن دیگه ملک جمشید حتما در بیابان مرده القصه از اون طرف ملک چمشید با چشم گریون و سینه سوخته در بیابان میرفت و هر وقتم که گرسنش میشد ریشه علف میخورد و شبها هم از سرما در رنج و عذاب بود تا اینکه روز هفتم شد و در پای کوه چوپانی رو دید که گله گوسفندی داره خودش هم نی به لب گذاشته و نی میزنه گوسفندا هم به هوای نی در همون حوالی چرا می کنند. شاهزاده جلو رفت و سلام کرد. چوپان هم پاس داد و بعد هم پرسید تو کی هستی و چه کاری و اینجا چی کار میکنی و این چه حال روزیه که داری؟ شاهزاده گفت من مرد غریبی هستم و دوزده منو بره نکردن. چند روزم هست که گرسنه و تشنه تو این بیابون خدا راه میرم. تا امروز به اینجا رسیدم و شما رو دیدم. چوپان دلش سوخت و بلند شد و مقدار نون و شیر آورد و شاهزاده خورد و خدا را شد کرد. بعد چوپان بلند شد و از میان وسایلش یه لباس کهنه و پاره بیرون آورد برد و به شاهزاده داد و ای جبان این لباس رو بپوش که از سرما و گرما آزار نبینی و اگر شاید منم بسیار پیشم بمونی سالی دو دست از این لباس ها بهت میدم. نون و شیر هم که غذای هر روزت خواهد بود. شاهزاده لباس کهنه و پاره رو که دید اشکش جاری شد که به چه روزی افتاده اما اونو گرفت و پوشید و گفت ای چوپان من در ولایت خودم مادر پیری دارم که منتظرمه اگه اجازه بدین میروم چوپانم قبول کرد و شاهزاده از اون تشکر کرد و دوباره سر به بیابان گذاشت رفت و رم. و دو سه روزی گذشت و تمام پاهاش آبله کرده بود و مجروح شده بود و به سختی میتونست راه بره همونطوری اشک میریخت و می خدای رو بدادم برست. دیگه طاقت ندارم یا مرگ یا نجات با چشم گریون افتار و خیزان میرفت و علوه بیابون میخورد شبها هم از دست جانبران خواب نداشت روزها هم آرون نی میگرفت و پیوسته گریه میکرد و یارب یارب میگو تا اینکه چهل روز گذشت روز چهل و یکم صبح علت طلو بود که از دور یه سیاهی دید متوجه شد که برج و باروی یک شهره خدا را شد کرد و به سمت اون رفت تا به دروازه شهر رسید. خواست که داخل شهر بشه که ناگهان چشمش به یک پرده افتاد که آبیزان بود و چون خوب نگاه کرد، تصویر دختر خیلی زیبایی رو دید که روی اون نقش بسته. تصویر دختری زیبا که با دلبری تمام، با لباسهای جواهر نشان و روی اون پرده نقش بسته بود. شهزاده جوان ما با دیدن اون تصویر زیبا در یک لحظه، یک دل نصد دل، عاشق دختری شد که توی اون تصویر بود. آه از نهادش بر اومد و نعره کشید و بر زمین افتاد و از هوش رفت بعد از ساعتی که به هوش اومد مثل دیبونه ها از جاش بلند شد و دید صد نفر در دورش رو گرفتند و بهش نگاه میکنن. خجالت کشید و خواست بره که یکی از اونا جلوش گرفت و گفت ای بود تو چی کسی هستی چه کاره ای برای چی زمین افتادی و بیهوش شدی؟ شاهزاده گفت ای جماعت من در دیار شما غریب هستم و از راه رسیدم مدتی هم گرسنه و تشنه در بیابان بودم چون که دوستان من لفت کرده بودم. برای همین ظرف کردم و اینجا که رسیدم از گرسنگی بیفوش شدم در باز بانها گفتن ای جوان قریب بلند شد همراه ما بیا تا تو رو به حمام ببریم و یه لباس تمیز بهت بدیم بعدم غذا و نوشیدنی برات حاضر میکنیم تا بخوری و هر وقتم خواستی میتونی بری و پول و اسبم بهت میدیم تا به دنبال کار خودت بری. شاهزده گفت من در شهر آشنایی دارم. شاید برم اونو پیدا کنم اگه اونو ببینم بعد از اون پیش شما میام. در واسبان ها هم گفتن باشه رفتار خودت میدونی برو و در شهر گردش کن ولی میتونی زود برگردی ما منتظرت هستیم اینجا. شاخزاده ی ما داخل شهر شد و تو کوچه بازار گردش میکرد. بوی نون گرم و غذا به مشامش میرسید و نزدیک بود که دوباره ضعف کنه و بیهوش بشه. ولی روی درخواست چیزی رو هم از کسی ندار. تا بروب آفتاب هرچی تو شهر گردش کرد کسی چیزی بهش تعارف نکرد. بروب آفتابم گرسنه و گریان مسجدی رو پیدا کرد و به اونجا رفت و یه گوشه گرفت و خوابید. صبح علت طولو از خواب و با خودش گفت موندن تو این شهر بیفاید است. کسی به من چیزی نخواهد داد. همون بهتر که برم به بیابون اونجا خد علف هست که بخورم و از گرسنگی نمیرم. این بود که از مسجد بیرون اومد و وارد کوچه و بازار شد. که ناگهان دید مردی هیکلمند و زیبا و قوی همراه با عده از همراهاش در گوشه ای از میتون شهر استادن از یه نفر پرسید این مرد چه کار است؟ چی نام داره؟ پاسخ شنید که ای جوان غریب این جوان خانه و داروقه این شهره از اون طرف نگاه و چشم رستمخان هم به شهزاده ما افتاد و جوان هیکلمند و خوش سیمایی رو دید که پا به و زولیده است بنابراین قلام خودش رو فرستاد و گفت برو ببین جوون برهنه و جولیده چی است؟ کیه؟ و بعدم بیارش پیش من. هنگامی که شاهزاده در برابر رستم خان قرار گرفت رستم خان ازش پرسید تو چی کسی هستی و نامت چیه؟ شاهزاده گفت نام من مدک جمشید و از مردم شهر زیرباد هندوستانم. شغلم ندارم. دیروز وارد این شهر شدم و الانم میخوام که سر به بیابون بزارم و از اینجا برن. رستان خان پرسید چرا اومدی؟ چرا میخوای بری؟ شاهزاده گفت کردم اهل این شهر غریب نواز و فقیر دوستن ولی اینطوری نبود. من چهل شبانه روز توی بیابون مونده بودم و علف بیابون میخوردم. گرسنه و تشنه وارد شهرتون شدم. اما از دیروز تا حالا کسی لغمی نانی هم به من تعارف نکرده. و شب رو هم توی مسجد خوابیدم. حالا هم میخوام دوباره برم به همون بیابونو رو بخورم تا از گروسنگی نمیرم. رستم خوان این حرفا رو دلش برای شاهزاده سوخت و دست در جیبش کرد و یه سکه در آورد و به شاهزاده داد و گفت اینو بگیر و به حمام برو سر و رو بده. غذایی بخور و فرداز شب هزود هم پیش من بیا که با کار دارم. شخص دسته رو گرفت اول رفت و یه غذایی خرید و خورد و شکر خدا رو کند بعدم یه دست لباس دست دوم خرید و به همون رفت و خودشو تمیز کرد و لباس تمیز رو هم پوشید شب رو هم تو یه مسجد خوابید ولی تا صبح خوابش نمیبرد که به خیال روی تصویری که دیده بود گریه میکرد و میگفت خدایا مرگم بده که آسوده بشم چون یقین دارم عشق این دختر منو میکشه در حالی که حتی نمیدونم اون کی هست و کجا باری، به هر جهت خوابش برد و صبح زود دوباره به بازار ره. دید که رستم خان بر بالای تختی در وسط میدون نشسته. همراهش هم در برابرش دست به سینه ایستادن. جلو رفت و به رستم خان سلام کرد. رستم خان دید به به عجب جوون زیبارو و قوی حیکنیه. جواب سلامش رو داد و گفت ای جوون، یه خواهش ازت دارم. آیا سخن منو قبول میکنی یا نه؟ شاهزاده گفت به جان خودم که هرچه بگویی میپذیرم رستم خان گفت ای جب من یکی از امیران نزدیک پادشاه هستم و ثروت و دارایی هم خیلی زیاد دارم اما فرزندی ندارم تو میتونی به جای فرزند من پیش من بمونی تا تو رو امین خودم بدونم و همچنین تو رو به پادشاه معرفی کنم شهازاده اول نه پذیرفت ولی وقتی دید رستم خان مرد صادقی پذیرفت و اون دو با هم سیقه پدر و فرزندی خوندند و با هم عهد و پیمان بستند که همیشه امانت داره هم باشند. بعد از اون هر دو به امارت و خونه رستم خان رفتند ملک جمشید امارتی دید به و زیبا. الگسه رستم خان ملک جمشید رو به حمام فرستاد و لباسهای تمیز و گیرانبه ها براش آماده کرد و وقتی که ملک جمشید آماده در برابر رستم خان ایستاد، اون مات و متحیر شده بود از این همه زیبایی و خوشتزیمایی ملک جمشید. متوجه شد که اون جوون اصیل زاده است. ما و شبش مجلس بزم و شادی پا کردن و تا پاوسی از شب هم ادامه داشت. و البته شب به هنگام خواب باز ملک جمشید یاد اون تصویری که دیده بود و آشقش شده بود افتاد و گریان و نالان با شوری از عشق به خواب رفت. صبح روز بعد ملک جمشید لباسهای زیبا و گرون قیمتی رو پوشید و خودش رو آراست و همراه رستمخان به بازار رفتند. همه مردم چشمشون که به ملک جمشید میافتاد افتاد چشم ازش بردارن به این خاطر که خیلی زیبا و شجا و خوشندان بود و اصیل زادگی از سر و روش میبارید. تا اینکه دوباره شب شد و به امارت برگشتند و بساط شام و مهمانی رو براه هم و تا نصف شب و هنگام خواب باز هم ملک جمشید به یاد اون زیبا رو افتاد و نالیدن و گریه کردن دو خوندن ترانه‌های سوزناک رو شروع کرد. از اون طرف رستم خان داروقه از خونه بیرون اومد. صدای گریه سوزناک و ترانه‌های ملک جمشید رو شنید و ساعتی پشت در ایستاد و دلش حسابی 62 سوخت. بنابراین داخل اتاق رفت و گفت ای نور دیده چرا گریه میکنی و به سر میزنی؟ چرا این حال و رو داری مگه چی اتفاقی افتاده؟ ملک جمشید خجالت کشید و خودش رو جمع و جور کرد و گفت ای پدر مهربونم درد قربت بددردیه به یاد وطن مادرم افتادم و دلم آتیش گره قدری گریه کردن رستم گفت ای ارزند مرحبا به تو که بی پدرت داری دروغ میگی من یه ساعت پشت در اتاق ایستادم و تو رو نگاه میکنم این گریه زاری تو برای غربت نیست دردی دیگه ای داری و تو رو قسم میدم که برای من هرچی در دل داری بگی ملک چمشید ابتدا زیر بار نمیرفت که حرفی بزنه اما با اصرارهای رستم خان زبون باز کرد و گفت حقیقت اینه که من آشقم و درد من عشقه و یقین میدونم که از این درد جون سالم به درد نمیبرم رستم خان گفت ای فرزند آشق چه کسی هستی؟ بگو که به جونت قسم تو رو به خواستت میرسونم ولک جمشید گفت من این یار دلدار خودم رو اصلا نمیشناسم ولی کن همین بعد میدونم که سه روز پیش که وارد این شهر شدم جلوی دروازه این شهر تصویر زیبا رویی رو بر پرده ای دیدم از اون زمانم تا کنون شب و روز و آرام و قرار ندارم رستم خان با شنیدن این حرف سرش رو زیر انداخت و در فکر فرو رفت. چهرش سیاه شد، زرد شد و بعد از لحظه گفت ای فرزند اگرچه این درد تو مونه و باید که ازش چشم بپوشی وگرنه از بین میری اما با این وجود فردا و اون رو در نهایت زیبایی و آراستگی بهت نشون میدم. اون وقت به من چه خواهی داد؟ ملک جمشید گفت اگرچه فکر میکنم که دارین مرا مسخره میکنید، ولی اگه کسی این دختر رو به من نشون بده و فقط یه لحظه اونو ببینم جون خودم رو پداش میکنم و تا زنده هستم خدمت گزارش خواهم بود. رستم خان گفت ای فرزند هرگز من تو رو مسقره نمی کنم من راستشو دارم میگم تو امشب رو به من مهلت به دو گریه نکن؟ فردا اگه این دختر رو به تو نشون ندادم نامرد روزگارم زگارم. ولک خیلی خوشحال شد و دست رستم خان رو بوسید و رفت و شاهزاده تا طلوع صبح به خواب آروم میرفت و توی خواب میدید که دختر از اونی هم که دیده هزاران بار زیباتر و آراسته است. دوستان و همراهان همیشگی کانال هزار افسان، اگه می بدونید که رستم خان چطور دختر زیبارو رو به ملک جمشید نشون داد پس آماده باشید برای قسمت بعدی که به زودی براتون روایت میکن در پناه نور الهی باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها،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 ادساین مهران دوستی